حسان سری به درگاه رضا بیرون نروم یک قدم از راه رضا خواهی که سرت به عرش توفیق رسد بگذار براستانه شاه رضا سلام بر عزیز و صاحب دل این رباعی که خوانده شد بنا به روایت نصرابادی از حسن خان شاملوست که خود شاعر به خط نز نوشته و در مشهد حضرت رزا به دیوار دارستیاده نصب شده و از این جهت خانده شد که امروز چند تند شاعر نویسنده و محقق به مناسبت میلاد با سعادت آفتاب هشتم سپهر ولایت و هفتمین فرزند علی مرتزا حضرت علی ابن موسر رزا علیه ما آلاف و تهیت و سنا در اینجا گرد آمدند تا به آستان حضرتش عرض ادب کند و ما تلیعه این روز فرخونده را به عموم هموطنان عزیز شاد باش می گوییم حضرت علی ابن مسر رزا حجتیست که هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال عرباب حاجت برای عرض نیاز و کسب برکت به آستانش گبین می سایند. و وجودش به سرزمین باستانی ما رحمت و برکت بخشیده است سرورانی که در این برنامه شرکت دارند عبارتند از آقای یزدانبخش قهرمان شاعر ارجمند که خود فرزند اقلیم زرخیز خراسان هستند آقای نجوا محقق گرانمایه که با آثار ایشان شمندگان عزیز بدون شک آشنایی دارند آقای دکتر زیاددین سجادی استاد محترم دانشگاه و همکار رادیوی ما آقای مهدی قاسمی نویسنده ارجمند آقای محمد فضلی پیمان شاعر گرامی و جوان همچنین در بین برنامه آقایان گلپایگانی اسدالله ملک مجید نجاهی و جهانگیر ملک در این برنامه هنرنمایی خواهند فرمود برنامه ما خیلی خودمونی اجرا خواهد شد چون روز جشن و حضرت نجوه ها نقل هم آوردند و در موقع مختزی محبت هم خواهند کرد و نقلی هم خواهیم خورد و من از کجا شروع کنم به ترتیب دیگه چون تقدم و تأخری نه خیلی آقای نجوه ها خواهیش از اونها شروع ببرم بله بله سخن شیرین رو آقای با پیمان بفرمه آقای قاسمی بفرمه آقای سوهیلی خود این شیرین کنید به هم در آقای قهرمان بفرمه سخن نخ رو من در درمینا این که ما منقلی خیلی متکل منقل قرمان یکی دوگو میخود مگه ما رو مدوق بفرمایید داره من رو میگه منقل خب بسیار مبارک انشالله مبارک است بله تولد حضرت رضا علیه السلام رو به همه هموطنان خودمون تبریک میدیم بله ما ایرونی ها افتخار داریم که به یک تعبیر همولایتی حضرت امام رزا هستی آمده، آمده، آمده، آمده. در میان اعمه گرامی و گرونقدر شیعه تنها حضرت رزاست که در ایرون هستند و مرغد مبارکشون دل. مطاف اهل دله دل. دل. بنده که خودم چیزی نداشتم که تقدیم بکنم اما افتخار میکنم که اثر استاد امیری فیروسکوهی رو روایت میکنم برد استاد گرامی حضرت امیری فیروسکوهی به این ناچیز افتخار دادند که راوی قصیده شون باشن استاد امیری فیروسکوهی چند سال پیش بیمار بودند و قصیدهی در استشفا و استدعای اعاده سلامت خودشون به آستان حضرت رضا علیه السلام عرض کردند پس از انشاد اون قصیده هم به مشهد مشرف شدند و قصیده رو تقدیم کردند و البته شفا پیدا کردند بعد از شفا و اعاده سلامت به شکرانه حصول آفیت قصیدهی به آستان قدس رزوی تقدیم کردند که این عبیات از اون قصیده است و عزم کنه باز جانی دیگر از آلم جان یافتم آنچه جویند و نیابند منان یافتم نه قرار دل و نراحت جان بود مرا هم قرار دل و هم راحت, راحت جان, جان, جان, جان یافتن اون چه در پیریم از ذوق جوان گم شده بود نک به پیران سر آن زوغ جوان یافتن قوت پیری اگر چند نشانیست مرگ. اینقدر هست که روزی دو زمان آمان. یافتم محبا. نقد عمری که به سودای فریبنده نفس به ایان باخته بودم به نهان امان. یافتم پس سی سال که صد پاره شد از خوف دلم هم به سی پاره قرآن که امان, آمان. یافتم محبا. محبا. عمر دیگر که تو را از دیگران بود سماء نگران باش که من از دیگران یافتم گرچه این پیش بهارم به خزان رفت ولی شکر الله که بهاری به خزان یافتم استادانه آفیت باختهی بودم از این پیشو به نقد آن سلف باخته را بین که چسون یافتم یافتم آفیت اما چه برم از آن که پس از گم شدن دندان نان یافتم نه خلیلم که از آتش به ایون رست ولیک قول بردن و سلاما به ایون یافتم ناو. یا نورکونی و سلام این گوهر با نقد روان یافت را دیگر ارزان نفروشم که گران یابد این خطا هم از آمد که من آن دار شفا دیر چون جستم هم دیرش از آن یافتم باید. باید. چشمه آب بقا روزه جنبخش رضا که از آن کوب دیگر به جهان یافده هم نه همین کوب دیگر که از آن منحل عزب هر طرف چشمه دیگر به جنان یافده هم منحل باید. چشمه سر ماه تا بنده کش مهر فروزنده شرق کش ز سعدین مه مهر قران یافده هم. مطلع شمس خراسان نه که خورشید حیات که از او در دل هر ذره مکن یافتم جان اگر جسم دیگر یافت ز نعمای جنون من از آن رشک جنان روح و روان یافتم آنچه از مقجز ایسا به خبر یافتند من ز نوباوه موسا به ایون یافتم از زبان هر که زیان بیند من از در او به زیان رفت ز را به زبان یافتم اشاره کردند به اون قصیده استشفاء قصیده اولی از زبان هر که زیان من از در او به زیان رفت ز را به زبان نه. یافتم به مدیحش سخنی گفتم و بحر سخنی سله زینبه نتوان یافت که جان یافت اون چه زنباغ جنون یافت دلتی به امید به زبان راست نیاید به جنون یافتم ای تو مرزی حق ای بل حسن ای اصل رضا که یقین است و پس از رحم و گمان یافتم جان چو بخشیدیم اینک دل رنجور ببین زین مقاومی که در این دار هوان یافتند بسیار البته همین این ها نسار و شکر باشیم باشین بابت این روایت خیلی خیلی عالی بلد, و خوب بود خیلی خوب و خیلی متشکرم سلامت استاد حسینی رو هم بخونید رحم از خداوند کمکی کسالت دارم بله بله دعا بکنیم علحضرت رضا بخویم که این عنایت به ایشون داشته باشه همه بیماران شفا پیدا کنند و هم چنین عنایت کنید حالا از استاد آقای دکتر سجادی بفرماییم ارز کنم که اجازه بدید من یه توضیح ارز بکنم مورد استفاده از آی دکتر رو میخوام عرض بکنم که ایشان در کار خاقانی تحقیق دارن و خاقانی هم اشارات زیاد به خراسان و حضرت علی ابن موسر رزا داره ایشون در زمینه خاقانی و مطالب ایشون در باره حضرت و تمام خاغانی شون صحبتی بفرمائند به طور بلده. موجز چشم. و همون با لسان بلیغ و فسی خود خودتون خاغانی که عاشق رفتن خراسان بود و حاضر بدن نشود بله. بله. بله. خدا ơi دکترم خراسانیه من دیگه اهل بیت ادراب ماپل بیت ارزمونم که همونطور که گفتید خاغانی از کسانی است که واقعا همیشه در تمام مدت زندگیش اشتیاق سفر خراسان رو در دلش داشته و خب با کمال تأسف به دلیل مختلفی این آرزو بر نیامده است در کاوانی و بار اول که این سفر رو در پیش گرفته از شروان آمده است به تبریز و از تبریز آمده به ری در ری دچار بیماری خیلی سختی شده بله. این در حدود سال مثلا 549 550 هجری قمری بود اینجا آب و هوای ری خیلی اذیتش کرده و بعد معلومم نیست به چه مناسبت والی ری اونطور که خودش میگه من کرده از رفتن به خراسان بره. بعضی ها میگن بله. راه ناام بوده راه ری به اینجا هم نام. مریض شده بله. اگر که موافق استید دو سه بیت از اون بله. اشاره بله. به بله. شهر ری که اینجا بوده بکنیم بعد اون وقت بریم از قصائدش چند بیتی خیلی به جا برای اینجا حالا شرک بکنیم که ری آب آبا خوب شده همون دو که اون را می رفت محفل ما جنبه تحقیقی هم پیشه کرد خیلی خوب هم که <تصفي> اونجا گفته آمه. از که من به ری عزم خراسان داشتم زن که جان بود آرزومندش مرا بلی. والی ری بند بر عزمم نهاد نیک دامنگیر شد بندش مرا بله این اشاره به اون که اینجا مانه ولی این رو همطور که از کردم آب و هوای ری خیلی ناراحتش کرده به طوری بلی. که یک قصیده ای ساخته در این زمینه بلی. و مطلعش این است که خاک سیاه بر سر آب و هوای ری بعد دعا کرده از منطقه گفته دور باشد دور از مجاوران مکار نمای ری بله بعد هم در آخر این قصیده میگوید که دیدم سهرگهی ملک الموت را که پای بیکفش می گریخ ز آب و هوای ری گفتم تو نیز گفت چو ری دست برگشاد بویحیه ضعیف چه باشد به پایره دی. چه باشد به پایره بعد اون وقت در اونجا گفته است که نراته در این مسئله به مناسبت اشتیاغش به خراسان که در این سفر که نشده برگشته و رفته به تبریز دوباره و در عبیاتی که حالا من باز به خاطرم از اشاره میکنن باید برید که اشتیاغش نمیداریم میگوید که می گوید خوالا اگر اجازه نمیدید من برم به خراسان اقلن اجازه بدید برگردم به تبریز ده. به شهر خورم اونجا برم اینو و بعد از اون که برمیگرده گرده اونجا سالها دوباره این آرزو رو داره تا در 580 هجری غمری اینها قصد میکنه از طریق تبرستان بره به بله. خراسان میگوید که دیگه ری رو حالا رها کردم و از طریق تبرستان که حالا در زم من به این عبیات هم اشاره می کنه بلی. سه قصیده به این مناسبت در اشتیاق به خراسان در دیوان خاقانی هست بلی. که دو تاش رو در همون سفر اول گفته است و یکی رو در اون سفر دوم یعنی 580 علتشم این است که اونجا از یک قران صحبت میکنه که دو سال بعدش باید اتفاق میافتاده همون قران 582 دوی هجری قمری که انوری هم راجعش پیش بینی کرده بود و بعد منتها نشد و اون در قصیدش اشاره میکنه در یکی از قصایدش از کنم اون قصیدهی که در 580 میگه مطلعش این است رهروم مقصد امکان به خراسان یابن تشنه هم مشرب احسان به خراسان یابن, یابن. بعد میگوید که چون اشاره به اون مسئله قران کردن میگه من از قران نمیترسم که میگید دو سال دیگه میشه چون 582 بوده چند گویی که دو سال دگر است آفت خصم بله. من امان از این آفت خصم رو در خراسان کارم گفت یه نکته دیگر بله. هم اجازه بدید من اشاره بله. کنم که خاقانی علاقه فراوان و شدیدی داشته به دیدن دانشمندان خراسان بله دیگه. و بسیار بله. بله احترام نید بله. داشته به اینها از جمله اونها محمد ابن یحیی های نیشابوری هست بله. می گوید که حالا چند بیت از این قصیده اجازه بدید که... می میگوید که دل کنم مجمر سوزان و جگر اود سیاه بله. دم آن مجمر سوزان به خراسان یاوه بر کنم شمع وفا را به خراسان طلبم کان کلید در رزوان به خراسان یاوه در جهان بوی وفا نیست وگر هست اونجاست چین گل از خار موگیلان به خراسان, خراسان یاور برق دل را که در این بیزه خاکی قفس است دانه و آب فراوان به خراسان, خراسان یاور من مرید دل پیران خراسانم از آنک شاه سواران را جولان به خراسان, خراسان یاور نزد من کعبه کعب است خراسان که ز شوق کعبه را محرم گردان به خراسان یابن به ردای طلب احرام همی گیرم از آنکه عرفات کرم آسان به خراسان یا ارز کنم که بعد قصیده, دی... اون دو قصیده دیگری که در اون سفر اولش گفته است یکیش کاملا آرزوش رو نشون میده برای که ردیف قصیده رو انشاءالله گذاشته خراسان شام انشاءالله بعد اونجا در اون قصیده و یه قصیده دیگر هم که در همونجا گفته وقتی من اشکردن از رفتن مطلع قصیدش این است که چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارم اندلیدم به گلستان شدنم نگذارم نیست بستان خراسان, خراسان را چون من مردی. مرگم آ سوی بستان شدنم نگذارم و بعد گفته است که چه اصاعت زمن آمد که بدین دین دلی به سوی مشرب احسان, احسان شدنم هم ری خراس هست و خراسان شده ایوان ارم در خراس که به ایوان شدنم هم در خراس ری از ایوان خراسان پرسم گرچه این طایفه پرسان شدن هم نگذارن پیداست که در با. ری اینجا گیر افتاده روزه پاک رزا دیدن اگر تقیان است شاید ار بر راه تقیان شدنم نگزاور تکرار بفرمایید روزه باید. پاک رضا دیدن اگر تقیان است شاگرد برره راه تقیان شدنم نگزاورم بعد میگوید که در دل دارم و درمان خراسان زسران خود سازر در کس درمان شدنم نگزاورم بعد باز اجازه بدید دو سه بیت دیگرش هم بخونیم بله باز دو سه بیتم از اون از, از می که میگوید که گیر فرمان مدهن. ندهندم مدهن. به خراسان رفتن بلده. چون در ری بوده گیر فرمان ندهندم به خراسان رفتن. رفتن باز تبریز به فرمان شدنم نگذارن از پی علم دو جاو مکتب و دکان دارن نه به مکتب نه, نه به دادخواهی شدن نگذارم خودم از جاها نمیدار قربت دلم شادون بعد هم به این فکر افتاده میگوید که هرچه چه اندوختم این طایفه را رش دهم بو که در راه گروگان شدنم نگذارند این چند بیت دیگه هم از اون ان الله بله بفرمایید استفاده میکنی میگوید که به خراسان شوم ان الله آن ره آسان شوم ان بعد از عویات دیگرش این است که میگوید چه نشینم به وباخانه ری باز در ری گیر افتاده دیگه چه نشینم به وباخانه ری به خراسان شدم انشاء الله اندلیبم چه کنم خارستان به گلستان شدم انشاء الله وقتی که از بیماریش برای خودش یک امیدی داره که حالا بهبود حاصل میکند و میره میگوید که تب مرا گفت که سرسام گذشت من پس آن شوم ان شاء الله. بله. چونز شربت حالا داروها رو میگه چونز شربت به جلابه اومدم بهز بحران شوم ان الله. و از مزور چو به مرغ آین باز مرغ پرنده شوم ان شاء الله کیلو ایم به من بدن مرغ کیلویی می‌خریدن اون وقت باط کرده مزور باط کرده بله مزور مخصوص قضای صادق خاص مریضه و از مزور چوبه مرقایم باز مرغ تران شدم انشاءالله همون ببخید در شیراز این کلمه مصطلح مزور میگن مزور برای مریض آشه بله یه دادن. چیزی آن خدا مثلا چوربا چوربا آشه ما تنظیر بله, بله. بله. <تصفح> <تصفح> بله. <تصفح> <تصفح> <تصفح> <آه> برای اینکه که خوردن نداره آدم چیز خوشمزی نه نه میگوید که نه نه تا حکم ز سلطان چرسه تا به فرمان شدم انشاءالله در دهد رخصه کنم نیت توس خوش و شادان شدم انشاءالله بر سر روزه معصوم رزا شبه رزوان شدم انشاءالله گرد آن روزه چو پروانه شم مست جوگلان شدم انشاءالله. شدم انشاءالله البته اشعار دیگری در این, این قصاید مفصله اون قصیبه هم ولی در حدود صد و این طور هست و اجازه بدید که اگر مجال داشتیم در این برنامه چون از خاقانی اسم بردیم و خاقانی خودش رو بدل صناعی غزنوی میدونه میدونید که میگوید بدل من اومدم من در جهان صناعی را اگر مجال داشتیم اجازه بدید چند بیتی هم از قصیده‌ای که صناعی غزنوی در مدح حضرت رضا علیه السلام سروده است بعد بخونم بعد از اونم ان الله بعد از, بعد از, از آواز ان حالا استفاده کنیم از برای اینکه یک تنبای توی داشته در جمع ما و حالت شنوندگان و بعد بریم بر سر مطالب خوب بعدی از آقای گلپایگانی و سایر هنرمندان استفاده بکنیم و حالی بکنیم و بعد ادامه بدیم برنامه بسیار خوب خب بفرمایید خوب تا حضرات سازشون رو کوچ میکنن بله بنده یه عرضی دارم و یه رازی رو باید اینجا فاش کنم این آقای نجوه که، اینجا صحبتش رو می‌کردیم همون آقای سید ابوالقاسم انجوی شیرازی خودمونن. آقا. خیلی واکس می‌نگهدارید. بله. و خلاصه نجوا متشکرم. ما نجوا کردن که نگید اسمم رو ما گفتی بره حال. مگر من ولی تون لاجم من اینجا احترایشون بیارم تون ایشون در حافظ تحقیقات کاملی برن. و نسخه ام که دادن از حافظی کرد نسخه خوب حافظ دینش از بهترین نسخه ها مشکرم یک غزلیه مشکوکه در هیچ نسخه قدیمی به نام حافظ ثبت نشده ایشون هم الان میخونم تایید خواهند فرمود صحیح راجع به عبدالعزیز ولی چون ارز ادبی کرده هر شاعری بوده روحش شاد بله بلد. بیشتر محققین انصاف میدن و اظهار نظر کردند از شعرهای دوره سفری بلد. باید این غذر رو گفت کرده از فیض روز تولد حضرت رضا علیه السلام روشن شد که این غذر از حافظ نیست اما این غزل ارزش داره صحیح. برای اینکه ارز ادبیهس است به آستان قدس رضوی و بس به آستان حضرت رضا علیه السلام. البته بافت کلام بعضی کلام و حافظ نیست. بله, بله, بله, بله معلومه. اون دوره صفوی و اون اون خاصونه. <تصفح> بنده این غزل رو میخونم بعد از آقای گلپایگانی خواهش میکنم سه چهار بیت همین غزل رو برای ما بخونید. بسیار مناسبه. استفاده کنیم از صدای گلپایگانی. ای ایدل قلام شاه جهان باش و شاه باش ای دل قلام شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در حمایت لطف اله باش چون احمدم شفی بود روز رست خیز گو این تن بلا من پرگناه باش آن را که دوستی علی نیست کافر هست گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش امروز زنده هم به بلای تو یا علی فردا به روح پاک امامان گواه باش امروز زنده ام به ولای تو یا علی فردا به روح پاک امامان گواه باش قبر امام هشتم سلطان دین رضا از جان ببوس و بردر آن بارگاه باش دستت نمی رسد که به چینی گلیز شاخ باری به پای گل ایشان گیاه باش احسن او کو باو بده دستت نمی رسد چرب چینی گلیز شاخ داری به پای گلبون ایشان گیاه باش این بیتش خیلی همش چند بیت خوب داشت میترا مرد خداشناس که تقوا طلب کند خاوه سپید جامه و خاوه سیاه باو حافظ طریق بندگی شاه پیش کن حافظ طریق بندگی شاه پیش کن وانگاه در طریق چمردان راه باش سرخ. سرخ. خیلی متشکر خیلی باشه به Thank mm -hmm. you. میں ہوں در یلا حافظ طریق بندگی حافظ طریق بندگی شاه پیش کم امید منم همارای آمیدان حافظ تریب بندگی شاب پیش کن وانگاف در تریب گو دردری سمر دون ربو سنگ تو مردان سالبان حالی کردیم من دیدم که از پشت شیشه آقای شغارخ نادری آقای بدیزاده همه در حال بودن و همه بلی جد ارادتمندان عمه اطهار هستیم و حالی کردیم خیلی خیلی متشکرم خب حالا از کدوم از سربران شروع بکنیم آقای قهرمان از آقای پیمان آقا آقای دو تا سجادیان با صحبت دارن آقای از عمر قهرمان من پاسم کنم که آقای قاسمی چون گویا شعر استاد رو روایت خون فرمود کدام استاد قمون استاد ملک شاعر ها آقای قاسمی شعر استاد ملک شاعرای باحال خیلی خوب کردن مقدم شعر استاد خب البته آقای قهرمان حق دارند که این تقدم رو بشن چون درسته که خاندان خود آقای قهرمان خاندان علم و هنر و مشهور خراسان هستند صحیح. اما به دو سبب صحیح. آقای قهرمان البته مقدم بر آقای قاسمی شعر نخواهند خواند برای اینکه آقای قاسمی راویه شعر استاد ملخو شعرهای بحار هست سعید. استاد ملخو شعرهای بحار استاد آقای قهرمان در حقیقت بنده ما مو... جناب آلی آقای هم مهمان خلاصونی هستیم برحالی نیزمان آیون هستن حلی... آقای دو سجادی آقای قهرمان ولی حلی... علاوه بر این آقای قهرمان رابطه سببی هم دارند برای این که با خاندان استاد وصلت کردند و بانو ماه ملک بحار که خود ایشون هم اهل علم و کمال و اهل قلم و اهل نویسندگی هستند یکی از مترجمین بسیار خوب ما هستند همسری های قهرمان رو دارن و از این جهت آی قهرمان حق دارند که من هم, هم همین استداره دارم که اجازه علی که حق این بود که باز هم استاد قهرمان نوبتشون بود و البته نوبت اول هم از ایشان بود عزبا. برای چون فرمودند بنده عبد ایشون رو اطاعت می‌کنم. بله البته اینکه باز از هر جهت که فکر کنیم باز به استاد نزدیکترن ولی من از اون جایی که خواستم که خب تکلیفی بود آقای سهیلی گردنم انده گذاشتن و اینم هنوز را راستش نمی‌دونم چرا که بنده در این محفل آقای یعنی منم چرا باید با... شرکت کنم نمی‌دونم شما اهلیت دارید. بر حال بنده با اجازهتون یک قصیده بلند و متبلیست از استاد ملک و شعرهای که بنده شخصا معتقدم که در قله شعر کلاسیک ایران صحیح. و واقعا در قصید سرایی شاید نظیرشون نیامده گرچه بنده اعتقادم باز این هست که چناب قهرمانی که الان خدمت خدمتشون هستم ایشان هم واقعا در شعر قدیم ایرانیان در شعر سبک کلاسیک ایران یکی از استادان مسلّم به شمار میرند ولی حال ملک گفت در قله هستین در این تردیدی هم نیست من یه هنری داشته باشم از برکت شاگردی استاد و راست لیاقت میبینم باحال با کمال افتخار قبول کردم که در این محفل شرکت بکنم واقعا با کمال افتخار یکیش خب میمنت روز هست دیگر اینکه به شعر خیلی علاقه‌مندم راستش خیلی اگر چه این شعر, شعر سبک قدیم یعنی شعر کلاسیک باشد یا شعر امروز اگر البته شعر واقعی و به معنای کلمه واقعا شعر شد حالا به هر حال اجازه بفرمایید اگر اجازه می فرماییم از این قصیده بلند بنده چند بیتی رو که انتخاب کردم و اتفاقا به مناسبت همین روزم هم هست بخونم بفرماییم تبارکل لحظین فرخاستان که بود به پاس درگه او آسمان همیشه مقی حریم زاده موسا که چون دم ایسا روان فضایت خواه که درش به عزم رمی به چشم زایر این آستان بود روشن هران چه گشت به سینا نهانزه چشم کلی به هست فرش ره اوز مرغزار بهشت چنان که خاک در او زکو سر و تصنیم زهی بران که نهد روی دل بر این درگاه بسیار خواهد. برای صافی و دین درست و قلب سلیم آفن. آفن. آفن. چنان که خادم این در بهار مد سرای که هست بنده دیرین و خاک سار قدیم اوه. روان شاد کمین چاکر این آستان که از ره عجز نهاده است به کوی رزا سر تسلیم مگر ستانت روزی زخاک این درگاه دوای جان علیل و شفای قلب سلیم زپاک یزدان ما را دمی هزار درود بر این حریم و خداوند این خجست حریم خب حالا دیگه اعنایت آقای از بخش نهرمان ها ارز کنم که من متاسفم که قبلا نمیدونستم که امروز سعادت شرکت در این مجلس عالی رو خواهم داشت به بود که به خصوص برای امروز و به یوم ششن ورادت با سعادت حضرت سامن العیمه علیه آلافت تهییت و سنا شعری آمانده می کردم قبل یعنی شعری مخصوص این روز ولی چون متاسفانه خبر نداشتم و دیر با خبر شدم اینه که میخواستم برای اینکه از فیض شرکت در این مرکز محروم نباشم شعری رو که در سی سال پیش تقریبا دلی. دلی. دلی. دلی. سی سال پیش یعنی در سالی که دانش آموز کلاس چهارم دویرستان شاهرزای مشهد دلی. بودم در اون وقت ساختم با اون شعر حتیبه در مسجد ریاض شده در نبید. آستان مقدس حضرت رضا صحیح بله با, با اجازت قسمتی از اون قصیده رو قرائت کنم استفاده می‌کنم بسیار مناسبه واشتم مقدمشم هم عرض کنم که من در تابستان سال 1316 که پس از تعطیل دویرستان به زادگاه خودم فیرزاداد محلات رفته بودم از مشهد نامه ای از جناب محمود فرخ شاعر گرونمایه خراسان که گمان می‌کنم در اون وقت ایشون سرپرستی دبیرخانه نیابت تولیت رو دار بودن دریافت داشتم که مگو فرموده بودند که به دستور نیابت تولیت قرار است که در مسجد ریاض یکی از بقای متبرکه حضرت ساقون الایمه نصب شود و نقره کاری شود بله و چون از قدیم مصون بوده بلده. که در این جول موارد شعری و ماده تاریخی گفته میشه بله میشده و روی در نقر کاری میشده و حالا هم قرار است که در مشهد شعرا هر کدام که توفیق به سعادت این کارو داشته باشن شعری بسازن و از میان اونها اون که مناسبت باشه انتخاب شه تو هم که حالا در اونجا هستی و بیکاری به شاید فرصتی داشته باشی و سعادت هم یاری کنه تو هم چیزی بساز شاید شعر, شعر شما بناده بشه برد. بنده با اینکه که در اون وقت حقیقتش اینه که هنوز در این زمینه هیچ توازمایی نکرده بودم و چنین آرزویی که البته داشتم ولی امید نداشتم که شعر من مورد پسند باقشه ولی باسم از روان امام علیه سلام حممت خواستم به شعری گفتم و فرستادم و در شهری ورد ماه که به محشد آمدم معلوم شد که همون چکامهی که من گفتم و فرستادم بر میان بقیه اشعار انتخاب شده که برای کتیبه در دادشه و نقره کاری شد جایده چه هاگه جایزی که جایزه رو از خود حضرت استدا کردم فقط کتبا تقدیر شد از من نامینه کتبا تقدیر شد از میابد طولیت بله بخوب حالا با اجازه دوستان گرامی قسمتی از اون قصیده رو عرض میکنم استدام کنم بایش میکنم ای بردر سرای تو جبریل بندبار روز و شبیستاده به فرمان کردگار مه. در پیش بارگاه تو کدرو بیان قدس چون زائران ستاده به تقدیس این مزار بسیار خوب بفرمایید در پیش بارگاه تو کرروبیان قدس چون زائرن ستاده به تقدیس این مزار مسیار موسا ستاده در رح این قصر پاسبند ایسا نشسته بر در این کاخ پاسده مسیار بنیان آستان ملک پاستان تو بر پایگاه از و شرف گشته استوام از زفعت تو آریتی رتبت خلیل و از خانه تو منزلت کعبه مستعار بسیاره حال که در تو قبله اعمال خالص و عام خلق جهان به خلق کریمت امین تا حاجت دلی به کرامت روا کنی صاحب دلان سوی حرمت گشت ره بسیار خو. بعدش البته گریز به قسمت هاییست که مطابق مرسوم اسم نایب توقیر تاریخ تا میرسه به آخر که ماده تاریخش هم این بیت آخره که تاریخ سال شمسیه این کار قهرمن نه. گفت تا ز شاه می سازد این تر فشاه بسیار 1316 بله همین 4 موتور رسید خب معلوم طبع روی استادانه دانش و بسیار سپاسگزاری آقای قهرمان لطف برمودید و حالا نه... یه مسئله پرغمشری که خوندم و اگه در خدمت بودم نخلی چون وقتم تنگ هست و از آقای دکتر سجادی استدا کنم بعد چندیت سنایی رو از وضعوتون جناب نجوا رهی رهی مایری در ماه های آخر عمرش بله بله به آستان قدس مشرف خوبی شدن خوبی و طلب شفا کردن در اون حریم پاک و در شبیه حالتی دست داده براشون و مستوی خوبی ساختند تحت عنوان شبیه در حرم قدس و اگر اجازه بفرماییم قبل از صحبت آقای دکتر سجادی یعنی بقایه های صحبت اولشون از آقای پیمان خواهش بکنیم این مصنوی شادربان رهی رو بخونند که یادی از او هم کرده باشیم بسیار یادش به خیر روان شاد باد پس آقای پیمان دیگه پیمان. دست شما رو میبوسیشه ده ده ده دیده فرو بستم از خاکیان تا نگرم جلوه افلاکیان بسیار شاید از این پرده ندایی دهند یک نفسم را به جایی دهند بسیار شاید ای که بر این پرده خاطر فریب دوخته ای دیده ی حسرت نصیب آب بزن چشم هوسناک را با نظر پاک ببین پاک, پاک را نه. شعر ناب خوی سهرگیر و نظر پاک باش راز گشاینده افلاک باش نه. خانه تن جایگه زیست نیست در خور جان فلکی نیست نیست با. ای که تو داری سر و سودای او برتر از این پای بود جای او اکسند چشمه مسکین نه هنر پرورست گوهر نایاب به دریا درن. درست تا که بدان دریا پیوسته این چشم زهر چشمه فرو بسته این بس پهنه دریا چو نظرگاه ماست چشمه ناچیست ندل خواه ماست بسیار این کوکب رخشان نگر کوکبه شاه خراسان نگر آینه قیب نما را ببین هر که خودی گوی و خدا, خدا هر که برو نور رزا تافته است در دل خود گنج رزا یافته است. سایه شه مایه خرسندی است ملک رضا ملک رزامندی است کعبه کجا توف حریمش کجا نافه کجا بوی نسیمش کجا خاک زفیز قدمش زر شده و از نفسش نافه معتر شده شده. من کیم از خیل قلامان او دست تلبسود به دامان او دوباره من کیم از خیل قلامان او دست تلبسود به دامان او افتر ذره سرگشته خورشید اشق مرده ولی زنده جاوید اشق شاه خراسان را دربان منم خاک در شاه خراسان و منم چون فلک آینه که هم کرد شیوه نامردمی آغاز کرد چارگر از چارگری باز ماند تایر اندیش زفرواز ماند تن رنجور و دل ناسبور چاره از او خواستم از راه دو نیمه شب از تاله خندان من طب برآمد ز بسیار روان شاه یکی از اختصاصات رهی ایمان و اعتقادش بود به محمد آل محمد و خاندان ائمه واقعا متشکریم که این خاطره رو زنده کردند و یادی از رهی عزیز که بسیار خوب کردید بسیار خوب روایت کردند بسیار خوب ادا کردند و خوب ادا کردند احسن دکتر سجدی من در اول مطلبم که از خاقانی چند شعری خوندم گفتم که خاقانی خودش رو بدل صناعی قزنوی میدانه بله و میگوید که بدل من آمده من در جهان صناعی را از این سبب پدرم نام من بدیل نهایه و جای دیگر میگوید که چون به بزنین شاعری خلید. شد زیر خاک خاک شروان ساهری دیگر بذا برز کنم که به این مناسبت من یاد آمد که صناعی غزنوی هم که از بزرگترین شاعران ماست یک قصیده ای دارد در متح حضرت رضا علیه السلام که چند بیت اون این است ولن متله اون قصیده این است دین را است در خراسان دشوار به محشر آسان داره. مطلع راسید است بعد چند بیتشین است از معجزه های شرع احمد از حجت دین یزدان چون کعبه پرادمیز هر جای چون عرش پر از فرشته هزمان هر زمان, هر زمان. از خاتم انبیاء درو تند از سید اوسیا در اون در جان. جان از جمله شرط های توحید از حاصل اصل های ایمان. ایمان فکر می کنم این اشاره است به اون حدیث سلسلت و زهب معروف که حضرت گفتن که کلمت لا اله الا اله اسنی و بعد گفتن که وعنمن ان شروطها فکر می کنم این بیت نشاره است بازم این بیت رو از جمله شروط توحید از حاصل اصل های ایمان خوب درک فرمودید درست مهرش سبب نجات و توفیق کینش مدد هلاك و خزلان بیشک مأمون چو به نام او درمزد بر ضرب فزود هم درم زان به نام رضا همیشه بینام بیشان رضا همیشه بیشان کس نیست که نیست از ترازی کس نیست که هست بر تو قزبان بعد میگوید که اندر پدرت وصی احمد بیتی است برا به حسب امکان تضمین کنم اندر این قصیده این بیت فرو فروگذاش نرنطوان بیت این است ای تو کفر و مهرت ایمان پیدا به تو کافر از مسلمان منم درباره حضرت علی رمید. علیه السلام ای تو کفر و مهرت ایمان پیدا به تو کافر رمید. از مسلمان در دامن مهر تو زدم دست او کوفر نگیردم گریبان این از همه دوستان و سروران اجازه بفرمایید خواهش نمید. بنده قبلا اجازه نمی‌فرمایم استادان محترم که از شخص سهیلی شاعر و نویسنده عزیز و گرانقدر و اجازه بفرمایید که خودشون اجازه می‌فرمایند صندوق هزار پیشه رادیو رو میگیم آقا داستان شب بنویسید داستان شب می‌نویسند و گاهی یاد بنویسید می‌نویسند شعر تنظامیز میگوین یعنی نه این که ما بگوییم خود در تمام بلد. این زمینه ها واقعا دست دارن و, و در این محفل ها این گونه محفل ها که در سابق هم زیاد داشتیم از ابتکارات ایشون بود که این محفل هم از, از ابتکارات ایشون بود من بلد. از این جهت اجازه بفرماید که اززیشون تشکر بکنم و در این حال بهشون تبریک بگم که اینقدر در ابتکار کارهای رادیویی و غیر رادیویی که در زمینه تحقیق و ادب و علم و شعر هست دست دارند و به طلاح حاضقند و ماه شما زبان برده. همه ما بوددیداییقا آ می ل بر مدی باید ار شتقه خیلی متشکرم بل از فیز گل آموخت سخن برنا نبودیم همه قول و غ طویع در منقاش اگر کسب فیز می از محظل صران میکنیم و با اجازه دوستان وشنندگان عزیز و با عرضز شاد باش به آستان مقدس عرضز رضا همه را به خدا می و روز به خیر میگویم مترم.